بسم الله الرحمن الرحيم ونحن الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين قال وصحبه أجمعين أما بعد أبداً أشتر بحث يكاد إن شانا هي رزو آخرات بدأنا بحث دنيم شدن كي قد واندر قرآن فاقتربت الساعة وانشق القمر ساعة كهامون بفت روز قيامت هاس نزيك شده اقتربت نزيك شده و ما هم دونیمه شد دونیمه شدن ما هم گفتیم که از معجزات رسول الله علیه السلام هست که همچنان این معجزه باقی مونده اونهایی که انکار میکردن در طول چارده تر و حادیث رد میکردن میگفتن غیر ممکنه بحث سبب و اسباب و اینا کردین که علم امروز با وجود تلسکوب ها، با وجود ماهواره ها اون فضانواردانی که رفتن روی کره ماه دیدن که وسط ماه نصف شده ماه الان که روی هم نشسته دقیق روی هم نشسته یک شکافی هست شیاری هست ما میتونم بر بگردن به سایت ناسا قشنگ اکس هایی که از ماه گرفته شده اونجا ببینن ماه از وسط دونیمه شده و دقیقه روی هم ننشسته بلکه یکی, یکی از لبه هاش بالاتر از لبه دیگر از وسط و قسمتی از صفات دیگر بالاتر هست که با چشم دیده نمیشه ولی خب با عکس های تلسکوپی دیده میشه این بحث انشقاق ماه بود که در قرآن بحثش اومده نشانه های دیگر هم هست از نشانه های روز قیامت که عبدالله بن مسعود اشاره میکنه که در قرآن بحثش شده 5 تا از نشانه ها را ذکر میکنه در یک اثر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که اون پنجتا نشانه یکیشون انشقاق ما هست دیگری بحث دخان هست دیگری بحث جنگ بد هست که به ترتیب اینا را امشه فاهیم گفت و استدلالاتشو هم میگیم میگی. به چه استدلال کرن عبدالله بن مسعود و آیا مخالفی هم در اون آیات داره یا نداره استدلال می عبدالله بن مسعود به فرموده خداون تختر فرتقه به یوم تعت و به دخان مبین فرطقه یوم تعدد السماء به مبين يعني یعنی منتظر باش که دخان بیاد وقتی که آسمان پر از دود میشه و اون دود مشرکین رو درگیر خودشون میکنه باد میکنه و دود از گوشاشون، از هاشون از چشاشون بیرون بیاد اون شنان چرا وقتش در روایت ها اومده عبدالله عنه مسلود رضی الله عنه میگوید که این قضیه رفت داره عبدالله بن مسود از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید رسول الله صلی اللہ علیه و سلم وقتی که در مکه بودن دعا کردن که هفته از نشانه‌هایی که خداوند مسخر فرعونیان کرد آل فرعون اونهایی که اتباع فرعون بودند موسی علیه السلام نفرینشون کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان نفرین رو بر انها میکنه بر قوم خودش دا انكه هموتك عبد الله المسعود ميگيت ابو سفيان ميال عند رسول <متغطال> الله <متغطال> عليه الصلاة <متغطال> والسلام <متغطال> ميگيت يا محمد إنك جئت تامرنا بالطاعه وبصله الرحم وان قومك قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم ليك اي محمد تو مدي دستور بالاطاعت مدي بنيتي مدي بصله الرحم مدي قوم در درن هلاك مشن صله رحم كجاس منظور يخاط اينو برسونه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاء ميكن عبدالله ابن عبدالله عباس و ابو سعید خدری رضی الله عنهما میگویند که رضی الله عنهم میگویند که منظور از این دخان اون دخانی که گذشته هست نیست اون دخانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه پیش اومد میگویند اون دخان منظور دخانی هست اون دودی هست که در که در روز قیامت وقتی که قیامت میخواد نزدیک بشه بعد از اینکه دجال بیرومیاد یعنی یکی از نشانه های بزرگ روز آخر است آمدن یک دودی هست که مؤمنین حالت سرماخوردگی بهشون روح میده ولی کفار نه خود میکنن بدنشون از اون دود بیشه اون دود بعد از ششاشون از گوشاشون بیرون میاد نه سر طولانی هست ابو سعید خدری رداللهان میگوید یهیج الدخانو بالناسی فا اما المؤمن فیأخوده منه که حیعت الزخمه و اما الكافر فیهیجه حتی حتى يخرج من كل مسمع منه يعني هر جای يبرودي بدنش خارج مشه از بني و تشش و بنوش خارج مشه و همشين اللهم تقول في حديثة حزيثان بازم هاس أول آيات الدجال ونزول نزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس المحشر تقيلوا معهم إذا قالوا والدخان. الدخان از نشانه هاي روز آخرات از نشانه هاي بزرگ ياد ميكون بعث الدخان که انشالله بعدا هم بازم چون الان بحث نشانهای کوچکه اون نشانهایی که پیش اومده و در قرآن بحثش شده انشاءالله به موقش هم بازم بعد بحث دجال که شد و یعجوج و ماجوج، به نشانه بزرگ روز قیامت اونجا هم بحث از اینها خواهیم کرد از جمله مباحثی که در قرآن اومده از نشانه های روز قیامت که گفتیم عبدالله بن مسعود به ششاره میکنه بحث واقع استدلال میکنه یوم نقص البقشه البقشه الكبرى ان منتقمون و روزی که حلاک خواهیم کرد اون حلاکی که راه نجاتی برای کفار و مشرکین نیست که در تفسیر این آیه عبدالله بن مسعود میگه که این انتقام خداوندی این حلاک خداوندی در واقعه بعد بود وقتی که سران مشرکین در جنگ بعد حلاق شدن نه روایتش رو امام ابن جریره طبری هم در تفسیر یاد میکنه از ابن مسعود که در فرموده خداوند میگه البته شطال کبرا یوم بدرن. حالا روایت ها زیاده در بحث همین که روز بس شطال که ابن مسعود یاد میکنه چندین روایت رو امام ابن جرید تبری یاد میکنه در تصیرش از جمله آیات که استدلال بهش میشه در بحث این که جنگ بعد یکی از نشانه ها بوده که خداوند به رسول الله علیه و علیه خبر داده از خبر داد، تا خدای خدابند قل ما یعبو بكم ربی لولا دعاؤكم تا قد کذبتم فسوف یکون لزام ابن مسعود میگه روز لزام در روز جنگ بعد بوده اون روز لزام روز بعد بود که مشرکین هلاک شدند قل ما یعبو بكم ربی لولا دعاؤكم یعنی خدابند اگر دعای شما نمی بود هیچ اعتنایی به نداش. شما نداشت فقط کذبتم شما تکذیب کردید آقابتش رو خواهی دید و دیدن ابن مسعود میگه وقتی که سران مشرکین در جنگ برد پشته شده از جمله نشانه هایی که گفتیم در قرآن بحث شده و ابن مسعود بهش استدلال میکنن بحث معرکه فرس روم که آیاتش در قرآن اومده قلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلده هم سیغ لگون تو آیات به تفسیر نداره این پنجتا موردی هست که ابن مسعود اشاره میکنن که در قرآن بحثش اومده و در متن صحیح بخاری چنین اومده از عبدالله ابن مسعود خمس قد مضاین الدخان واللزام والبصر والقمر والروم پنج تا از نشانهای قیامت هست که گذشته روخ داده یکیش دخان دیگری لزام و بعد بصره که بصره و لزام گفتیم یکی همون واقعه بدر و القمر والروم این پنشتا نشانه هایی هست که در قرآن بحث شده و بحثش را کردیم الان اما نشانه های دیگری که در قرآن اومده ما فقط به دو مورد اشاره میکنیم گفتیم بحث از قرآن کاهیم کرد بعد از, بعد از اون بحث از سنت مواردی که در سنت اومده اشاره بهش شده جلسه گذاشته هم یک قسمتش گفتیم و اونم مبعث رسول الله علیه و السلام رسالت محمد علیه الصلاه و به پیامبری یکی از نشانه های روز قیامت است که رسول الله علیه الصلاه و سلام می بین من و قیامت بین این دو تا انگشت انگشت سبابه و انگشت و وسطی بین دو تا این اندازه خیلی کمی که باقی مونده اینقدر بین من و قیامت و در روایتی دیگر رسول الله علیه الصلاه و سلام می بین من و قیامت به مثل از مغ... مز... از زمان نماز عصر تا نماز مغرب یعنی بین این دو تا از عصر تا غروب خورشید. این قسمت از 24 ساعت که دو ساعت یا دو ساعت و یا سه ساعت اگر باشه این قسمت دیگه باقی مونده از از زمانه که بشریت روی کره زمین دارن زندگی می تا اینکه قیامت برقابشه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم گفتیم که اشاره به این قضیه دارن رواية خيلي زيادة رواية أناس هست رواية أبو جبيري هست رسول الله صلى الله عليه وسلم در حديث بفرام وعفت أنا والساعة تهاتين كفضل إحداهما على الأخرى وضم السبابة والوسطة كإشارة بإشكار داخل الزمن لنشانه هاي روزة فيامات كالخطاب البحث امشاب منهاز بحث بفات رسول الله عليه الصلاة والسلام از نشانه هاي روز آخرات بفاتش هست رسول الله عليه الصلاة والسلام در حديث الشيش مورد شش مورد که امشب فقط یک مورد رو همین گفت. شش مورد رو میگوین که از نشانه‌های روز قیامت. کلین می‌فرمایا صلی الله علیه و آله و سلام اعد الستم بین یدی الساعه موتی ثم فتح بیت المقدس ثم مو موتانی یاخذ فیکم کعقات الغنم تا آخر روایت. تک تک اینها شش مورده. روز فهم کردن ان شاء الله در جلسه آینده. بحث وفات رسول الله علیه السلام یکی از نشان های خیلی سنگیم بود یعنی صحابه توقعش نداشته که رسول الله صلی الله علیه وسلم به این زودی فوت بشه و اینجا گفتیم یاد میکنن که یکی از نشانه های روز آخر هست وفاتش هست رسول الله علیه سلام وقتی که دفن میشه فاطمه رضی الله علیه هم یکیت حدیث مخاری رو زد میکنه این گفته روایت از فاطمه رضی الله عنها فاطمة رجل عنها بأناس بياد أقابت نفسكم أن تحتو على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب دلتو شط خط برسل رسول الله صلى الله عليه وسلم برزيد هذه نشانها قفتين خيلي سخف تنيون مسائل خيلي بزرغ كالروخ داد برئي مسائل درست كم يوجد مدر نشانها هي هاتك دلالات بر آخرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه رضی الله عنها میدلته شوخ خره سرت درد برسه رسول الله صلی الله علیه و سلم سید الانبیاء و خاتم النبیین فقط سرش بریزید دفنش بکنید انس جوابی نداره ساکت میشه ساکت میشه و میگه که دلمون نشوظ ولی قضا و قسمت الهی جزئی نیست که ما تسلیم اوامر الهی باشیم أنا سروات ميكونا، الروات خلي جالبة. أنا سرد الله عن رواة ميكونا مي جاءوا بكر الصديق رضي الله عنه. بعد بفوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، همراه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أنهما عنه. باهم ميرا من نزّ أمّ إيمان. رسول الله عليه الصلاة والسلام بزيارة شو ميركت؟ بعد بفوت رسول الله عليه الصلاة والسلام به این که رسول الله به زیارتش گفتی میرد رفت. رفتن به زیارتش که تثریت بهش بگن دیدن که اون زن گریه میکنه او وقت عمر رو به اون زن کردن و گفتن که چرا گریه میکنی اون انتخابی که خداوند به رسول الله کرده بهترین انتخابه خداوند مسلحت دونسته و او را گرفته در این وقت در این زمانه بعد اون زن خطاب به عوقت عمر میگه است ما ابکی ان لا اكون اعلم ان ما عند الله خير للرسول میگه شک ندارم و گری نمیکنم از این که اون چیزی که خداوند انتخاب کرده بهترینه برای رسول الله علیه الصلاه و السلام لیکن گریه میکنه که دیگه وحی از وحیت آسمان قطع شده ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء با این حرفاش با این سخنانش انس میگویید ابو بکر و عمر شروع به گریه کردن و گریختن اونجا اشکاشون جاری شد و هیجت هما علی البکا فجعل یمتیان معها همراه او شروع به گریه کردن کردند شونی خیلی تلخیه وفات رسول الله صلی الله علیه و یک طرف و انقطاع به قطع شدن محترف دیگر خب چی میشی مگر ده بحث بشه دیگه سفنه ها اومد اختلافات درگیری ها بین مسلمان ها پیش رو اومد دیگه کی میخواد حل و فصل بکنه دیگه کی میخواد قضاوت بکنه دیگه آیه نازل نمیشه دیگه ارتباط خدا و مخلوقین قطع میشه خداوند دیگه قرآن گذاشته سنت گذاشته دو تا مرجع گذاشته میخوان بعد از این تنازعتون فیشه تو الله و رسول اگر اختلاف کردید برگردید به خداوند و با پیغمبرش دیگه پیغمبر خدا کی نیست تنها چیزی که هست سنت محمد علیه السلام خیلی سنگینه خیلی تلخه چه واقع های تلخی رخ داد فاطمه رضی الله عنها، بحث فدر شد مریض که شد خب دیگه بحث نیست که حل و فصل بکنه اختلافات بحث اختلافاتی که بین معاویه و علی رضاقه عن همه شد همین اختلافات دیگه کسی نبود حل فصل بکنه مرجع فقط قرآن و سنت بود کی این فتنه هالا انشاءالله شاء الله سعی می‌کنیم اون درس‌ها و عبرت‌هایی که در این قصه‌ها هست بشاره اشاره اشاره بکنیم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد